هفته دیگه جوابش بده ان شاء الله روشیشون رو درسه. آره. هم آره، سری فایل داره تو تست تست که از باشه شما نه نه بردسی کنیم آنست خب، کنم چی بود؟ در زمان که این آقا خب صورت سود این شکلی هست ها دیگه وسطش خط نداره، دو طرف هم نداره یه طرف است. حزینه ها اگه درامت ها بیشتر در باشه، میشه سوم. که حزینه ها بیشتر باشه میشه؟ حزینه تو حساب داریم پرانتز یعنی منها یعنی درامت ها من های حزینه ها فاصله شده پرانتز دورش نیما یعنی منها. خب حالا تو یه دون صفحه سفید یه صورت سود و زیان میاریم مثل همون یکی برای زندگی شخصی صحب so یه روز بود اینو ما برای یه دوره تاییم کنیم مثلا یه ماه مثلا سه ماه مثلا یه سال اون برای که بتونیم عددامونو تو ذهنمون بیاریم ماهانه از همش بیاریم ماهانه خب درامت ها مثل چی؟ <تصفيق> مثل درامت حقوقتون اونایی که خیلی علداشون تغییر میکنه یا درس یا حواشی پرسنتیه یه میاد گیم فلان بین من فروش من هنوز <تصفح> فروش, فروش فروش یه کلمه برای محصول به کار میره. درآمد یه کلمه ای برای خدمات به کار میره. اگه دوتاشون جاشون تاشون جاشون همینه. تو اینجا می‌نویس فروش. خب بعد درآمدا دیگه مثل چی؟ مثلا اگه پول تو بانک نداشتی سود میگیری. میشه چی درآمد بحره یا اگه یه واحد رو دادی اجاره بابتش چی میگیری؟ اجاره میگیری هر ماه میشه چی درآمد اجاره <تصفح> <تصفح> دیگه اگه حق و امتیازی داری ازش درآمد کسب میکنی؟ چیزی رو به اسم خودت ثبت کردی و دادی به یک کس دیگه ماهانه ازش پول میگیری سود سهام داریم اگه سود سهام میگیری همین فرانچاز هم کمیشنی کسی داشته بشه بورسند داشته باشه شما هیانه باید چیزی این چه ببه بود دیگه الان اینجا می نیست آنیا جو ببرشت راستاد یعنی راستا پرسانت از حقوق جدا کنیم اگه پرسانت با ما بگیم که گفتن جدا اگه دوتا شد جدا داریم جدا بعد جمع بیزنیم <تصفح> که جمع در تو توی ما <تصفح> خب بعد نوبت چیه؟ هزینه ها هزینه ها. ها تعدادشون چندین برابر بیشتر از درمایه است مثل گارچ می آمد اینطوری که آدم متوجه بشن هزینه هاشون زیاد میشه مثلا هزینه اجاره هزینه وارض، درستو تو ماه. رو میتونیم به ثابت و متغیر تقسیم بکنیم. بله. تو مدیریت مالی می‌کنه. بله، مالی. ازینه ی فورشاک. <تصور> ببین. شما میشه اینجا ببخشید. نه. نه،, نه. بشینی؟ ببخشی؟ نهی ببخشی نه، اینا چیکار می‌کنی؟ نه، من نه، نه، می‌دین‌ها ببینید میری سینما می‌بینید یه قط بلند جلوی اجاره خوراک، خوشاغ ازینه از از از ای ازونه بانک ازینه قسط loan ام... بهره بهره‌ای که بهات وامیدم کل قسطش نهام بحرش اصلش که از اون کم بهرش فقط <تصفيق> بحرش هزینه بحرهی که بابت قسط بان شما با زیره هم برید پایین <تصفيق> شما زیره هم برید پایین چون کل باد یه طرف است. من میام اینجا برای اینکه دیگه جا ندارم هزینه آب و برق و تلفن و گاز و اینا هزینه های بهداشتی از نای پزشکی، از سفر، از تفریح تفری، از نای به خریدن هدیه توی کلاس ما هفته پیش داشتیم که ما چای من روز بیستم چای دلیم اون یه ای آیتم بزرگی میشه جداش میکنه در نه توی مثلا تفریه میکنه شد بعد سوخت بنزین و اینا هزینه بیمه همه اینا رو با یه تقریبی توی ماه ناق برنیزیم بعدا میتونیم بزرگش کنیم ماه رو یه اصال رو اینا مثلا؟ حقوق چه میشه حقوقی که پرداخت میخونه این باید چیه؟ اونم خط نداره دیگه تو باید نمیشه تراغهاش با درستشون توی آره برای هنه اینا با یه تقریبی برای ماهانه عدد بذاریم که کاروکاسی شما چی میدین؟ یکی هست؟ که چیست؟ که کس با کاره؟ من شما هایی خورده دارید حسابیتاب شخصی خودتون رو با کارتون با از نکته حساب اینه که جلسه دیگه ما من از اون در واقع مثلا من که حساب کتاب خودتون رو از حساب کتاب کارتون جدا کنید حزینه های خود زندگیتون جلسه هزینه های, های مو نیست اصلا یه پولی برمیداری از مغازره میری شما که خانواده تفریل نباید اون پول رو جزو هزینه های مغازه نمیسید اون برداشت خود برداشت برداشته درستان. درستان. مثلا همین شما ها الان یه ذره هی دارید تو. ده رو داشته بنویسیم فروش نعازت می‌نویسیم که آنها ازشون باید یه تعلیم نامه استفاده برای جدا، یه تعلیم برای بنویسید حالا از اون یه در نظر می‌گیرم. اول رو بنویسیم؟ اول اول بنویسیم پس میشه فروش دیگه. یه نه نیشه اینجا تو دیگه حقوق نداری نه برای کاره میشه پروشه چقدر بعد مواده چقدر؟ مواده و یا که می‌دی. بعد این یکی حزنهای آق و برد و پوشاک و اینها میشه سرگاه پس رو اینا رو کنیم اینجا سمسی برم اوکی خیلن در این من جلسه یک میخوام شما با حسابداری آشیم کنید <تصفح> باش می کنید، ببینید که چقدر ساده است و چه اطلاعاتی توش هست خیلن اینه مم. جزئیات شرکتی و اینا همه بحث های مدیریت مانی همه رو احسان در اوقع این بلده شمی؟ لذتشم میبرید، ها انگلیسی، مثلا به م... هزینه آورها، مثلا تلفن یک سعبار میشه فقط؟ دو همونم میخوام هم که می مثلا آب و و تو هزینه شرکت شرکت مثلا من میرسیم ولی حالا چون همه هزینه ها به مواد و مواد <تص> همه چی، همه چی به جز اون دوتا میشه آوره مواد و دست آموزش هم میشونم جا اضافه بله گفتیم اول ساعت گفتیم در حقیقت آموزش چیه؟ دارایی <تصفح> با این طبقه بندی های حساب داری میاد اینجا ولی در حقیقت آموزش ازش پول در میاد دیگه و اون اساسیه که جز دارایی ها بود اونا در حقیقت چی هن؟ حزینه کابیه چه هم بزنید؟ میشه جام جامعه از ها چی شده؟ جم زادین از نا رو حالا از درآمدا منها کنی اگه درآمدا بیشتر بود اسمش میشه چی سود اگه هزینه ها بیشتر بود اسمش میشه سیازه کیا سود شده همه کیا بیان من سود شده من, من زیاد شده شما چیز؟ صورت دیگه، صورت در اینجا نمیدیم که حزینه اینجا رو برداخت کنیم خب ایچیز میتونم دارم فکر میزنم صورت در خب سود, خب سود خب شده بسیم خب خب اینم هر ماه کم میاد <تصفح> <دلوقتي تصفح> یه چیزایی پیش میاد یه برجایی پیش میاد آها. که اصلا قابل هیچ پیشگیری توش نیست تو الان قاطیه دیگه نه تو خوبه من میخونه با چیزهایی که تجربه کردی؟ درامن هم گونجوش هفشتوان داره امکان داری همون شما باید مینیمیسی درامن هزتو از ماهانه چیکار کردی؟ حالا یک چیده شد صورت بیارم نمونش صور. دو سطح هم مبزا یه ده زیان, زیان. خانوم زبان صورت صورت صور. پیمانکارم که زیان شو خانوم ریازیده هم صورت صور. صور. صور. تو زندگیه تو زندگی شخصی، به این سوده میگم پسنداز تو زندگی کازمی چی؟ میگم سود چرا این پسندازه نینیشه؟ ما نمیدونیم خیلی مفتو پسنداز داشتن مثلا یه نکته مهم تو سواد مالیه با سود به داشتن یه نکته مهم تو سواد مالیه و از دوران بچگی باید آموزش داده باشه اون گلک کارش هم بچه همه رو حضنه نکنه یه بخشیش رو پس انداز کنه یه شعری داره سعدی حتما شنیدیم این رو یاد داشتم کنیم بد نیست میگه که بر احوال آن بنده باید گریست که دخلش باون نوزده و خرش باید بیست این همین سواد مالی و صورت سود و یعنی هزینه هاش از درامده هاش بیشتره بیشتره این آدم وزش مالی شروع نیست و هی با هم بد و بدل باشه به بگیره بهره بده و هم برشگذش آسطا درشتی من مقاده ها و نوشی هایی که مثلا میخونم زمین آسطا در هم نه. اول که مثلا حق میگیری اگه میخوای پس انداس کنی اولش باید از اون پسند پس انداس کنی هرچی موند بعد خرش کنی نه اینکه هرچی موند رو بری پس کنی اینطوره هیچی نگونه درست ها استادیا باید یه تکنیک میگه یکی از بحثان که گفتی جارو تن؟ با اون جامعه نمیشه پسندازه یعنی بهتر هزینهش بکنیم به اون پسندازه رو اینه عرب میدونیم از این عرب بخری بهتر از اینکه بذاری نمایه اگه بهتر اولا بری اون برید یه اصلا دارایی ایجاد نکنی؟ به نظرم ایسه که اگر فرصت در خود دو جوره فرصت استفاده بکنی شد و یه هردوشه کم میشه شده هم شرایق ایران اینجوریه حالا ایرانی هیچه جانب چیلی نیست حالا بزارم بگم جلوتر خب تصمون میگن پس انداز. و اگه مفهوم مهم تو سواد مالیه اون نکته که گفتیم نیم شباره چند رسیدیم؟ بریم ادامه حالا میخوام چند تا نکته راجب درامت ها و هزینه ها بگم که خیلی مفهومی ماست. ما سینیم، بیرسیم چه ها خب نکته ها را خب نکته آن نکته که هست اینه که درامت ها نباید درآمدها نباید وابسته به یک منبع باشه یعنی چی؟ جای مختلف دنبال یعنی که جای مختلف مت که یک منبع منبع درآمدی شرکت کار میکنه تا شامل تاکسی باشه. وابسته به یه منبع باشه. چون اگه وابسته به یه منبع باشه یعنی شما فقط اونجایی که کار میکنید درآمدی حقوق داری. این وابستگی به همراه و اگر اونجا اگه یه موقع کم و زیاد بشه شما دیگه میمونی با درامت ها باید از چند مغزه باشه این خودش پیش نیازش اینه که قبل شما داراییاتونو به خوبی متنوع کرده باشید داراییهای مختلفی داشته باشید اینم ادامش بنویسیم تو همون نقطه این امر مستلزم آن است که شما دارایی هاتون رو به خوبی متنوع کرده باشون یعنی یه بخشی از درآمدتون حقوقتونه یه بخشی از درامدتون اینه که اجاره می‌گیری، یه بخشی از درامدتونه که پول تو بانک داریم سود میگیریم از فقط از یه جا ها نباشید حالا خوب کار کرده اما کسی به اونا حالا، حالا، حالا, حالا. نکته بعدی نکته بعدی بهترین درامت ها آنهایی هستن که؟ آی این نکته سو دیگه بوزه میخونن آنها میگوش کن اینجا دیگه آخرشه دیگه بهترین درامت ها که آره میگریه نکنی دیگه بی خودی شده بی خود اومدی بهترین درامت ها، اوناییه که نیاز به حضور فیزیکی شخص نداشته باشه یعنی پولت برایت کار کنه. و این سیستم و دنبال اون دارای های مولدی باشی که خودت نخواهی توی شیرین فروشی باشی میدید چه بیزینس هاشون اینطوریه مثلا نوشته که مثلا، بستنی اکبرمشتی شعبه نداره خودش هم باید اونجا باشه تا کارگره اونطوری که میگن تولید کن و بفروشه نهایت درآمدش به اندازه حضور خودشه و اون ساعتی که باید ولی شعبه دو رو که میزنه شعبه سه رو که میزنه کارو که تفویض میکنه سیستم دوربین و الکترونیک رو, اینا رو میاره برای کنترل میتونه درامداش تا بی نهایت افزایش بیاد. خیلی آدمای سوناتی فنجونه گه. اگه خودشون بالا سر کار نباشن تامونه. اونا همیشه همون قاضی میمونن. دوست نداریم با دوستی اخیریو؟ نه اوس کن. نکیلاستم از جیلوسال مجموعه میسازم تا اونا. درش مسح. تاج و اس. خلاص. دریم در اماده مون. این که نیازتون دا وجود داره. مثلا پولی که گذاشتی تو بانک سود میگیری. مثلا اون آپارتمونی که دادی اجاره میگیری می خوادت که نمیخواد بزنی، نیاز به حضور فیزیکی سهامی که خریدی یا بیزنس سایدی حالا هر تو هر کاری که هست ما حالا امروز دیگه میگم با دنبال فروش بی نهایتی باشه فروش بی نهایتی یعنی که سیستمی ایجاد کنی که این هیچ محدودیتی نداره شما میتونید مثلا مکدونالد رو مقایسته کنید همه جو شبه داره، به جزیران با تو کارجوانیان نداره اینی که تو گرگانه چیه؟ اکبر جوجه تازه اصلا شبه شده درد من مطمئن اگه اکبر جوجه تو آمریکا بود الان دنیا رو گرفته بود شما حالا خودتون بین مکدونالد و و همبرگره یا با این جوجه ای که روبه انارم داره و بایدیتی شده این تفکر ما... این ما بوده که دنبال فروش بینهایتی و افزایش شروعه و اینا نبه های گفته خودم باید بالا سر این کار باشم نمیشه اگر نه اشتباه هم هستا ولی اون یکی اومده در سراسر سر دنیا پخش شد خب پس این دو تا نکته راجع به درآمدا یکی اینکه وابسته به یه منبع نباشه یکی هم که اصلا خودت نباشی اون سیستمه برای بشرفه بشرفه این استاد به راجع الان شوخی مسج شما همین دیگه بله شما تا حضور نداشته باشی شما میتونی ده تا استاد دیگه تولید بکنید که واسه شده, شده. بعد ما که من کارهای دیگه درست کرده باشم بل. که اون‌ها کار کنه راجع به خزینه‌ها یکی این که حزینه خودتونو حزینه هاتونو به ضروری و غیر ضروری طبق بندی کنید یه سری حزینه های باقی ضروری هست نیاس های اولی هزینه ها به ضروری و غیر ضروری طبق بندی کنید خب تمرکزتونم بسارید روی کنترل. هزینه های غیر ضروری در چیز رو بماییم؟ کنترول خودتون رو نه. نه تمرکز تمرکزتون رو بذارید تو کنترل هزینه های غیر ضروری مثلا بعضی ها وصفاست خرید دارن هر چیزی میبینن نکته بعدی نکته بعدی از خریدهای های هیجانی بپریزی از خریدهای های هیجانی یعنی چی؟ یعنی یعنی اگه چیزی لازم ندارید علکی فروشگاه نه اگه چیزی رو لازم دارید بهترینش رو بخرید با کیفیت لا, رو مثلا میگن هایپر مارکت خوبه هایپر مارکت خیلی بگه خیلی برای اینکه شما میری چیزهایی که لازم نداری میبینی جمع می‌کنی میاری خونه بعد تازه میگیم این چی من خریدم چه کاری بود من کردم؟ اصول علمیش اینه مدیریت علمیش اینه اگه چیزی رو لازم داری بریم بهترینش رو بخوریم اگه چیزی لازم نداری اصلا تو فروشگاه قدم نزنین نباش. امروزه یکی از ایتیاد ها ایتیاد خریده متعدد. یعنی طرف عصبیه دائما مثل یک کسی که معتاده عصبیه تا میخره آروم میشه یعنی رو الان پنج مدل شده ایتیاد خوردن کسایی که مثلا روزی سی بار در یخچالو با میکنن بیوندن عصبیه موقع تو دوستاتون داشته باشه تا میخوره چی میشه؟ آروم میشه ایتیاد خوردن، ایتیاد خرید، ایتیاد اینترنت اتیاد به مواد و ایگه اتیاد جنسی تمام اینا رفتارشون همینطوریه عصبی اون کار انجام میدن آبا خیلی الان اتیاد خرید زیاد شده مثلای که فقط میخواه یعنی حقوقشون میگیرن میرن مثلا تجریش با ساج قایم مثلا طرف میبینی صد جفت کفش داره ولی هر ما باید دو تا دیگه بخواهد یعنی جان از این نگرد تو من اولا مستقرد اتیاد باید منطقی باشه دیگه ما اینجا بحثم منطق خب خریده حیجایی ن نکته بعدی راجبه هزنه ها به کانال های ماهواره ای را نخوری دیدین کانال میشا کو نمیدونم 24 ساعته داره تبلیغ میکنه نمیدونم چی چی لاغری نمیدونم برای کچلا اون نمیدونم گوشکو برقی انقدر تبلیغ میکنه و مثلا یه استرس هم بزنی میاره در خود استاد خود سداسیما در حقیقت شما داری چی کار میکنی؟ شما افتادی تو تله پولدار شدن یکی دیگه یکی دیگه داره پولار میشه و شما داری درامزادش کار میکنید مصرف این چیزی برای پسنداز و سرمایی گذاری اینا واقعی؟ نه نکته نه. بعدی لوازم و اساسیه به صورت قسدی نخرید مثلا تاوانی مصرف هست زده مثلا یخچال افساد مثلا پونزمه زمانه برای کارمندان چرا این کارا غلطه؟ برای که شما اولا میری اساسیه میتونی این یه غلط دوم من. حقوق های ماه بعدی هم تم... کشور کرد باید بدی بره دیگه چیزی برای پسانداز و دارایی ایجاد کردن باقی نمیمونه اینا همه در جهت پولدار شدن یکی دیگه است که داره این مانور رو میده نکته بعدی که این خانون گفت و رفت ما گفتیم باید چی داشته باشیم پسانداز پس انداز خیلی مهمه. حالا دو روش برای پس کردن هست. یکی می شما هزینه‌ها رو انجام بدی هر چی پس انداز کنی. یکی دیگه اینه که اول سهم پس رو از حقوقت همون روز اول بذاری. چرا؟ چرا؟ اگر چیزیموندو وقتش کار کنی، هزینه کنی. این تکنیک کنترل خیلی هم جواب میده. مثلاً با حقوق ماهیه نیم سکه بخری همون اول بعد بقیه چیزی که مونده رو روش حزینه کن برما میریزی نه که اول هزینه کنی بعد اگه چیزی مون پس اینطوری هیچوقت هیچی واقعی نمیمونه اصلا حزینه ها خاصیتشون اینطوری با ما ها چیزی میشه شما مثلا تو زن دیسک مغازت رو بزرگتر کنی. یخ یخچال دیگه بخری، یه تحچیزات دیگه بخری، یه فر دیگه بخری، دو طبقهش کنی، یه کاربایی همیشه از فروشی که داری، یه بخشی رو بذار کنار برای این کارا <تصفح> معنیش اینه پس انواز معنیش اینه بذار کنار برای سرمایه گذاری ها بزرگتر شدن من خیلی رو هم تاکسی هم کار میکنن دیگه از پولی که ما روزانه در میارن یه بخشی همون آخر شب کنار. حالا برای هزینه غیر قابل پیش بینی و برای تبدیل کردن ماشینشون مثلا برای سال اگه این کارو کنه یعنی تفکر بلند مدت داره. و واض نقطه،, نقطه این بود که اول سهم رو از درآمدهاتون کنار بگذارید سپس به هزینه کردن بپردازید نکته بعدی که خیلی مهمه ببین ما به این میگفتیم چی پس انداز درسته؟ حالا برای که پس انداز داشته باشیم یا باید در آمده رو بالا یا باید هزینه همون رو بیرون <تصفيق> مثلا حالا زندگی من یه طور پسندازون صفر. <تصفيق> یا جوین دو تا کار کنیم دیگه درآمد رو بگیریم بالا یا خزانه رو بیاریم <مت> بالاتر <پاینتر> که بیایم پسندازیت بتویم انداز سرم بذارم. کدوم یکی مهمتره درآمد هر دو مهمه مهمه. کدوم <تصفيق> یکی باعث انرژی ما بیشتر صرفش بشه؟ درآمد <تصفيق> <دلومتز. دلومتز؟ تصفيق> نه، شاید درآمد باشه. درآمد باشه. درآمد. با فرقی نداره. درآمد بالا باشه یا خزینه‌تن بالا باشه. همون، دوره والا قوی رو داری، بلی حضرت رو کم ترپن درامدت بیشتر بیشتر هم میتونه بیشتر اگه دوتاشون به یه نسبت به بالا بیاد پایین که اتفاق نریافته درامت ها باید که یه نسبتی نباشه بیشتر باید رو کدوم انرژی بذاریم؟ درامت ها جواب اینه، این اولویت یک، این اولویت دو چرا؟ چون با درامتی بیشتر سطح زندگی هم افتی که ارتفاع چی کار میکنن اشتباه بزرگی کارمندا در درآمدو تو ذهنشون میبنده میگه آقا من کارمندم ارتشی هم فدایم ما حقوق ما 2 میلیون بعد میذاره رو خانواده که چون حقوق شما ما نکنید اینطوری کنید خزاناتو اینطوری کنین کم کنید ما اعلام همه انرژیشون میذاره رو ازای خانواده و خزینه و هم ذاتا چنبشو نیست نیستن. و همیشه هزنهای جدیدی برای ما پیش میاد. آسید یعنی دور باطلیه کارمند توش هم بعد هزینه ها رو حالا کم کنیم نهایتش صفر بشه دیگه تو واقعیت که نمیشه تا به ریاضی هم. ولی درآمدار رو اگه اضافه کنید میتونه تا بین نهایت نیترش بازه و اینکه شما رو درآمداتون کار کنید یعنی کارآفرین یعنی ریسک یعنی زندگی ولی کارمنده اینجا رو میبنده تو ذهن خودش میگه من موقعا تموم شد دیگه راه جدیدی وجود نداره پس همه تمرکز هم میذارن رو چی کارش هزیده پس این نکته اینه که برای اینکه پس انداز داشته باشیم باید تمرکز و انرژیمون به دنبال راههای جدیدی برای درآمد سرش درآمد بشه تو اولویت بعدی حواستمونم به هزینه های غیر ضروری مون مثلا کارش هزینه بکشان تبعات داره تبعات دا ای... منفی داره ای ای... تو زندگی شخصی هم همینه ها ببخشید تو شرکت همین همین اصلا مدیر آمزه میبینه سود کم شد میاد اضافه کار رو قطع کنید رفاهی رو قطع کنید اون رو کنید اون کارگری کنی که باید پیچه مثل مثلا آرون به پیچه اینجوری تجهیزات دوما میخوا کاهش هزینه اصلا راه حلی برای افزایش سود نیست. چیزی راه اصلا سنتیه، واقعاً علمی نیست. نیست. شرکت‌ها، آدم‌ها کشورها <تصفح> همه باید دنبال راه‌های جدید و خلاقانه برای افزایش درآمد باشن. چی <تصفح> می‌خواد صحبت کنه؟ دیگه می‌خواد صحبت کنه. نه، حاضر صحبت بکنن. کلاً این واقعاً یه اشتباه، من چیزی که خار زدن بودم اون یه نامه ی معروفه صحبت چیه مثلا من بهش جنس بدمه فرض شو ما 60000 تا چادر کوشکا به جنس بدی فروش مثلا گفتم پارسا چقدر داشتی گفت 50000 تا این 50000 تا خیلی بالاست میگم گه شش تا بزن 25000 تا حالا 5 10 من میگی 5 شیشه از کس دیگه داتش هم خودت گفت نه من میگم از اینا رو بیارم پایین اینجوری میشه گفتم این اشتباهه از این ها رو تو کار نمیتونی بکنی این رو داری پس یه جوری بردامی ریزیش بکنی که بتونی تو اون ساعته از این نیروات ای استفاده بکنی این از اینه پایین بردن من کنون تبایاتش پیشیدن امکان بزیر نیست از یه جای دیگه ای درمیت تبایات منفی دارم خب پس تمرکزمون رو چی برینه افضالش درامت, درامت خلاقیت یعنی زندگی حالا بیایید این ها دوتا رو به هم رفت بدیم ما یه ترازنامه گفتیم یه سروزا حالا همونی که اول جلسه گفتم راه پول دار شدن این خانومه که رشته زبان بود خوشش رو مدار رفت راه پولدار شدن این طوریه با استفاده از ترازنامه و صورت سود دو زیان این دوتا رو بیذاریم کناره هم دکتر بعدی میشه راه پولدار شده درامت ها هزینه ها سود یا زیان <تصفيق> این چیش دوسط نیور این تنظامه که یاد گرفتیم آنکن این هم دو طرفش با هم برابر بود این هم سود راه پولدار شده رو میخوام با این دوتا بگرم بره بولار شده, دو بول شده هم با این یعنی رشته مالی چی میده راه پولدار شدن اینه که اول از همه یک درآمداتونو رو به هزینه تبدیل نکنید درآمدتون چیکار کنید درآمداتونو چیکار کنید, در چی کنید؟ پس انداز کنید بعدش با پس اندازاتون چیکار کنید نه با پس ها دارایی های موضوعی کنیم دبت کجا؟ دارایی های موضوعی که بوده در می بعد این دارایی ها این تحقیق شده تو دنیا بین سه تا هفت سال طول میکشه. کشه دسته به اینکه شما تو کدوم کشور هستید که چه بیزنسی رفت بیش؟ در دایت ریسک چیه؟ <صفح> سه تا هفت سال طول می که دیگه دارایی ها برای چی میاره؟ درامند درامند یعنی همونی میشه که دیگه خودت نیاز به حضور فیزیکی اگه کار میکنی، کار سرگرم میترم کار بایدید نیست، خیلی فهم شما مجبوری کار کنی یا کار برای این یکی پس این شد شماره یک این یک این دو و این هم چی البته که تو دنیای واقعی پیاده کردن این یکی و که من اینجا چهار تا قطعی به راحتی ها نیست مدلش همینه ها ولی عملی کردنش سخت همین که عظیمه نکنی 90% مردم ها نمیتونن او میگیرن، خرج میکنن او میگیرن، خرج میکنن او می یعنی کارمنده اصلا رفتارشون سینوزیه روزی که قوق میگیرن اوج ما خوشفت چوکرم صبح میرن ورزش میکنن همه رو تعقیل میگرم اون <تصفح> سه روزی که تمام میشه تا آخر دوباره جاب سلامم نمید <تصفح> اصلاشون خرار بگیرم تا دوره دوار قوق رو یه چند روزی باش <تصفح> و این رفتار سینوسی همیشه اعدامه داره کارمندا در حقیقت بچه تو این قرمزه گیر میافتن تو این درآمد هزینه کار رو به حزینه می بچه دار میشن، بچه بزرگ میشن و چون این حزینه های زیاد و زیادتر میشه مجبورا دو جا کار کنن بازم از این لوپه بیرون نمیان چجوری میشه از این لوپه اومد بیرون؟ از این لوپ درآمد هزینه که دور باطلیه همزه که در میشه برای چیز باشه دی. جهت تو زهنت باشه به چیز و اصلا هم توش مهم نیست که حقوقت کمه یا زیاد تو این نکته خیلی مهمه. یکی بگه حقوق کم کمه را تا هیچی نمیشه باشه اصلا مهم نیست که حقوق کمه یا زیاد مهم این لحظه که تو حقوقتو گرفتی میخوای با چه کار کنیم این آینده، ایه. پولی هر فردی تو ذهن خودش شکل می‌دهد حقوق منو دادن حداقل رو دارم قدارم می‌گنم اونو زدن اینا داغونش می‌کنن یا سو چیزایی تو ذهنم هست کمتر دارم یه چرخی رو می‌سازم یه پایهی رو می‌سازم پیاده کردن این مدل سخته و همینجاست. آدمای تیمدار کم. اکثر آدما ها یه کارمند. کارمندی فرقی با زندانی نداره. نداره. واسه هر ساعت دوی سر ساعت دوی مرخصی ندان بدن، یه ماه کار کنی، حقوقی رو قرض کنی. یه ماه بودی کار کنی، حقوقی رو قرض. پیاده کاری نه، این نمی‌کنه. حالا این مدل سواد مالی رو ما تو کشورمون تو شهرهای مختلف شکلهایی مختلف داریم مثلا اسفانی اهل چی هم؟ از نیستن اهل حسندازن بعد هم همه‌شون همشون یکی، دو تا سه تا خونه داریم ولی تا چند سال پیش همه ماشیناشون هاشون بود درسته؟ اسفان میرفتی پر جیان بود ها دیگه کم شده ولی شیرازیا ها عکسن هر درامت دارن؟ از اون تا یه حقوقه میگیره یه پاداشی میگیره میره دو به. یه هفته اونجا ترتیبشو میده می و میارن از شیرازی ها همه ماشین های بالا دارن ولی خونه ندارن یا تبریزی ها جز به اونای که سواد مالیشون خوبه شمالی ها تو هر این ها استثناء هست دار کلی نمیگم کلان رستوروهای بینرالی در محدودی تبدیلی به ارتصادی نداره چون دو ساعت تعمال می کنم می‌مسن معذرشون به آرشنه بخواهد نه رستوروهای بینرالی یا یزگی‌ها خیلی شرایط اقلیمی هم مهمه دیگه توی کویر بودن همیشه آدم های و صرفجو و قانه‌ای هم مثلا یزگی‌ها می‌گن که مثلا زمین بخر سندش رو در جا پاره کن نکه الو بگنم پاره کنن و یعنی که اگه هیچ وقت نفروشش معنیش اینه یا میگن که یه چیزی بخد که باد از روش رد بشه باد از زیرش رد نشه چیا اینجور؟ یعنی چی؟ یعنی همون رو بگذارد یعنی ماشین باد از زیر رد میشه هر لحظه ممکنه یه اتفاقی براش نمیخواد دارون باده نه یعنی آب و آتیشه ولی زمینه هیچیش نمیشه یعنی ریسک نداره باد از روش رد میشه هم دنیا میگه یه, یه ای یه ای آره. ولی اصلا این مدلی که ما مطرح کردیم بحثش نیست که آدمها خصیص بشن کسی اشتماف فکر نکنی بسیش اینه که یه چیتایی درست کنید که اینا براتون کار کنید بعد حزینه کنید آیا یعنی بعدش هزینه کنید وقتی این مدل را افتاد نزارید بر بقیه خودتون استفاده کنید بعدش هزینه کنید هزینه یعنی رفاه ولی از اون اول اگه مثلا میخوای از صرف زندگی تو شروع کنید تازه رفتی دانشگاه اومدی بیرون بابات هم پولار نیستی چی بهت بده؟ این مدل اینه از صفت میخوای شروع کنی خودت رو پای خودت و به یه جای برسی همیشه کارمند نمونی اینه حالا دو تا کتابم که الان ممکنه تو خونده باشید اگه الان اگه بخونینش فرق میکنه اصلا تو دوره MBA تو سرفصلی که تو دانشگاه تگزاس هست این کتاب هست. بابای دارا، بابای نادار. تو خلاصه این کتاب. ها. کتاب انگیزشی قوی در زمینه سواد مالی. یعنی اصلا اینو من سال 82 دو خوندم. و دانشجوی ترم آخر لیسانس حسابداری بودم. یه صفحه شوندم، یه صفحه شوندم تا. تا شب تمومش کردم. حالا نمیتونیم ولش کنی. بابای دارا بابای نادار انتشارت کجا فرا. نشر فرام بابای بی پول هم میگن نشر؟ مدیریتی فرا. نشر فرام نشر مدیریتی داره؟ داره کتاب ببخشید، نخش نشر، انتشارات نشر <bei> حالا یه از هم هم داستانشو میگم ولی حتما به خورینا ها یعنی به این که من الان پیندقه توضیح میدم اکتفا نکن هر پاراگرافش دکت است این نویسندهش رابرت رابرت کیوساکی رابرت کیوساکی نویسنده کتابه این داستان زندگی خودش داستان چیه؟ این توی یه مدرسه بوده بچه بوده نوستان توی مدرسه بوده مدرسه پولارا بوده مدرسه گیرونی بوده این جزء جزده متوسط بوده پدرش مثل الان دیگه طرف مثلا هیچی نداره ولی بچهشون میذاره مدرسه یکی اگه سال اصلا دلوقتي. سالی ده ملیونه همینطوری این باید دوستش دوتایی جزده قش متوسط بودن یه روز تولد یکی از همکلاسی هاشون بوده که مادر همکلاسیشون میاد همه رو دوت میکنه به جز این دوتا این دوتا میرن یا ما رو چرا دعوت کردیم میگه که مادر دوستش میگه شما واظ مالیتون با بقیه نمیخونه. شما به این دلیل دعوت نیستید. این دو تا بچه 9 ساله از همون روز گفتن چیکار کنیم؟ پول دارشیم. انگیزه شون از اینجا شروع میشه. بهشون برخورده بوده. خب. بابای رابرت که این کتابو نوشته استاد دانشگاه بوده. میومدن پیش این میگفتن چیکار کنیم؟ پول دارشیم. رابرت و دوستش دو تایی. این میگفت: درس بخونید، درس بخونیم درس بخونید، بخونی، برید دانشگاه. توی شرکت معتبر برین استخدام شین سی سال کار کنید بندش هم بازش هستید اون رو بازش هستگی بگیرید الگوشی میده. می بابای اون یکی اون عغزی فروشی داشته کاسب بوده دواره گفته چیکار کنید پول دارشین؟ اون می گفته نه, نه. می درس بخون درس بخونید درس بخون بخونین ولی به فکر کسب و کاری برای خودتون باشین برای بقیه کار نکن. آمندش. اینا دائما و اینا دو این دوتا باباهای در رفت آمد بودن دیگه آخرستن این بابا استاد دانشگاه رو میگن بابای نادار اون بابا کاسه رو میگن بابای دارا و این داستان کتاب اینطوریه و اون از اینا میگه که من بهتون میگم باید برای من کار کنین مثلا شنبه شنبه که تحتیلیم باید بیاییم بهتون مغازه من کار کنین و حقوق هم خبری نیست اینا میگن بشات تو به ما نکته پولدار شدن میگی میگم میگی بابا میگم میگه خلاص دو سه ما از اینا کار میکشین نه از تفریح و همه چی گذاشته بودن بعد اونا هیچ نکته ای نمیگفته بعد, بعد دو ما میرم پیشش اینا با تو هیچ نکته ای نگفتی ما همینا برات کار کرد میگه همینه که هست ادامه میدید یا میرید این شرایط سخت خودش یه انگیزه هست که میخوام ببینم شما هستین هنوز سختیارو میکشی چون نکته های من خیلی مهمه حاضری مثلا قیمتشو بدهی یا نه مثل بقیه میخوای با تو خیام بازی کنی این درست باز وای میستن فکراشون رو میکنم اینا ها بازم وای میستن با این و اونم کم کم شروع میکنه نکته ها رو میگه و اینا از اول اینطوری کاسب نمیشن از اول کارمند میشن درستشون رو میکنن یکی شو توی شرکت زیرا عکس یادم میتونی دریایی میره بعد همیشه دنبال سرمایه گذاری بوده سرمایهگذاری ها هم تو مسکن بوده اونقدر که میگه همیشه می رفتم دفتر املاک می شستم همیشه پیشنهاد می دادم به مشاوران بالاترین چیز رو می دادم پورسسانتو می دادم خیلی نکته داره مثلا ما دیدی یه معامله می کنیمیم که میخواد به اون طرف بدیم چقدر سخته برامون اون میگه بهترین گزینه رو اون برا میاره یا مثلا یه قانون داره آخرش قانون بارش که میگه مثلا من همیشه صدقه میدادم اعتقاد داره که یه بخشی از این ثروتی که داره خیلی خیلی سروتمنده یه بخشی از این ثروتی که داره به خاطر کارایی که خیلیهی که انجام میداده تو همه بچگی میان کتاب های دست دوم رو جمع میکنن آره یه دونه میون تو زیرزمینی تو انباری خونه هم دوستش بوده، یه کتابخونه، یه کتابخونه، دار کتاب, آره کتاب جمع که خواهر مونم میذارن اونجا که بچه خواهرام میشه ملشی شو. یه موقعی هم به اون می و کلی تو مدرسه داشتن درس می‌خوندن، مثلا 12 سالشون بوده، بیزینسشون تو زیرزمین خونه اونا با اون خواهرش، ها تو محل می اومدن کتاب بهت اجاره می‌کردن می‌رفتن. یه دفعه میرن مثلا قوطی‌های خمیر دندون جمع می‌کنن. آره نیکل اینا رو برمیدارم این رو زوب کنن و اینا بعد یه دفعه باباشون میرسید میگه چه کاری خواستم پول چیز ضرب کنن <تصفيق> یعنی چند بارم دو رابرت میگم خیلی خوبه قبل از سی سالگی یه بار برشکست بشی نه دیگه تو 50 سالگی ها دیگه نتونی خودتو جمع کنی یعنی کار کنی یه ای رو کنی بخوری زمین این خودش جزء پروژه پولدار شدنه برای شکست خوردن زمین خوردن حتما این کتاب بخون کتاب انگیزشی فوق العاده قبیه و 6 ماهه وار سالی یه بار بخونیم چون وقتی میخونی مثل بچه‌ها هستم مثلا فیلم بروسلی میبینم پا میشن لق رو زرن اینور بر. اینطوری انگیزه میده من باید برم یه کاری بکنم باید طول بعد کم کم یه انگیزه میخوام واسه همین توصیه میشه که برای بچه 16 12 سال هم بوده بخونی به اونا کار کنی بهتره دوزه های دیگه برای بیست خوبسته، اینده بیست دوران دانشجویی تا بیس و پنگ خیلی به ما میگن اینهایی که میگی درسته ولی ما دیگه مثلا پنجه سال اونه کارمندیم توی یه لپ هزینه افتادیم تو اینه مثلا سال بیش به ما میگفتی. خوش شما ما که ما اصلا کارمند. این یکی هم بخونه ارزش ازش آموزش ارزش پول و مدیریت مالی به کودکان و نوجوانان میسنده ماندانا سلحشور نشر پنجره این همور بچه هاست دیگه که بچه ها رو جوری چون بچه ها در کیک ندارن فقط میخوانن فقط چیان مصرف اینو این اونو میخوام اون رو میخوام اون رو میخوام اون رو آره دیگه این که بچه دارن این کتاب خیلی کتاب از بچه که مثلا میگن پول آهمی نمیدونن عدد زیر حق سال و حتی نوجوان چجوری اینا رو بشون یاد ببین صورت سود و زیانشون چطوریه؟ چجوری پسنداض کنن؟ تو خونه کمک کردن مثلا چه مدلی بهشون حق حقوق حق بدی پول تو جیبیشون چه الگویی داشته باشه؟ یه طوری که اینا خودشون مسئولیت وضعیت مالیشون رو بپذیرن. بدونن که پول همینطوری در نمیاد. اینو درک کنن نه که بچاها مثلا خسیس اینا اصلا منظور نیستا. یه دفعه توی یکی کلاسا <تصفح> <تصفح> یکی بلند شد هم کلاس ام بی ای بود یه خانومی بود رشتهش الهیات بود گوه شما آمدی سه ساعت میگی پول و پول و نمیدونم پول پرستی و رواج میدی نمیدونم استقبار جهانی رابطه داری چه بعضیه عزت علی گفته که بالاترین سرفت قناعته ما اصلا شما از الهیات برای چی اومدی MBA؟ ای؟ خودش یه سواله دو، وقتی ما میگیم از اینه نکن یعنی چی؟ نمی قناعت کن؟ اینا میگفتن که نه، آدم ها مثلا فقیر باشن و قانه باشن خیلی بهتره در صورتی که اصلا حضرت علی هم همچی داستانی نداشته دائم کشاورزی میکرد چاپ میزده که مردم داره بالا دیگه الان یه بنیادی هست تو آمریکا آمدن تحقیق کردن یه سیاه ها همین جور جرمه تا پیشنم باره سیاه هست. بعد دیده که اینا سواد مالیشون پایینه اصلا دارن بین آموزش میدن که ثبات مالیتون بیاد بالا صاحب کسب با و کاری بشید با شخصیت بشید تو جامعه بعد کارمند دست از سفیدوس هم داشته باشید یه از هر دری که فقد بیاد ایمان از اون در ایمان میره ما منظورمون پولپرستی هم نبود منظورمونی بود که یا ما باید پول رو مدیریت کنیم یا پول ما رو مدیریت میکنه چون دانش رو دیگه برقی بچه ها جاوش دادن واسه <تصفح> دیگه همه جور آدم با همه جور طرز تفکر هست دیگه آسان جلسه چون... بعدیمون جمعه هست این جلسه استثنان اینجوری بود دیگه میشه این چونها ورادت از رسوله آره ما ما گرفتن یه عیاد اعیاد هستیم روسته میکاش کنم اگه بیان نه اون هشنبه تازه نه هشنبه